هزار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ نام خدای مهرافرین آن یگانه مهربان. سلام وقتی شما همراهان جوان به خیر و شاد افسانه‌ها افثانه ها میراس فرهنگی بشرند و همباره وسیله ارتباط گذشته به آینده بودند افسانه‌ها مثل ترانه های بومی آرام و قرار ندارند پرندگان نارامین که یک جا موندن رو صلاح نمی دونن. دائم در حال حرکتن و از مکانی به مکان دیگه کوچ میکنن افثانهی رو براتون نرد میکنم نام افسانه نوایی و پسر کفاش بریرفت از کتاب قصه هایی از آسیا با ترجمه از ابلفضل آزموده زمانهای قدیم مرد کفاشی زندگی میکرد که فقط یه پسر داشت و این پسر هم توی مدرسه درس میخوند روزی از روزها وقتی پسر داشت میرفت مدرسه سر راهش کنار خونه بزرگ چشمش به دختر زیبای افتاد که روی ایوون نشسته بود و داشت به کبوترها دونه میداد جوون افثانه ما با دیدن دختر یه دل نه بلکه صد دل آشقش شد و روزگارش از این رو به اون رو شد دیگه چندان توجهی به درس و مشق نمیکرد و کارش شده بود رفتن کنار خونه بزرگ دختر و محو تماشای اون چند روزی گذشت و دیگه دختر لب ایوون نمی نمیومد جوان که تحمل ندیدن دختر مورد علاقش رو نداشت خیلی ناراحت و دار شد اینکه یه روز جوان همینطور که داشت از مدرسه برمی دید که در خونه دختر بازه و ناخداغا وارد خونه شد اصلا خودش هم نفهمید چجوری وارد اونجا شده خاص برگرده اما یه دفعه از لاگ در اتاق دختر مورد علاقش رو دید چند لحظه ای استاد ولی به خودش که اومد گفت من من برای چی اومدم اینجا؟ نه کار درسته نیست باید برگردم بعد فورا برگشت هنوز چند قدمی پیش نرفته بود که صدایی به گوشش رسید و جوان در حالی که نمیدونست چیکار کنه به گوشه حیاط رفت و وارد اتاق مهمانخانه بیک شد ترس برش داشت که نکنی کسی اونو اینجا ببینه اون وقت چی داره که بگه؟ با خودش گفت خدایا اگه کسی اومد چه جوابی دارم که بدم؟ حالا باید چیکار کنم؟ با احتیاط اطرافش رو کرد کردید که گوشه حیات غالی خوش نخش و نگاری پنج شده به سرعت رفت و شروع کرد به لوله کردن قالی. یه دفعه سرکله ی بیک پیدا شد و با دیدن جوون فریاد زد آهای تو کی هستی اینجا چی کار میکنی سب کن ببینم اون قالی رو برای چی جمع میکنی جوون شرمنده و خجل در حالی که نمیخواست شناخته بشه و بفهمن برای چی به اینجا اومده با دست گفت من،, من،, من دوستم من دزدم من اومدم قالی شما رو بدزدم بله برای بله همین اومدم اینجا من دزدم. بیک با غضب نگاهی به جوون انداخت و گفت واقعا که خیلی پر روح و وقی هستی به بعد زیر لب تکرار کرد چه با کمال پر روی میگه برای دزدی اومدم اینجا آه خدایا عجب دو روزمونه ای شده به بعد دست جوان رو گرفت و گفت الان که بردمت پیش قاضی اون وقت پر کن خلاصه به جوون جوان رو برد پیش قاضی تا تکلیفش رو روشن کنه سختی جوون و بیک به نزد قاضی رسیدن علی شیر نوایی هم در کنار غازی نشسته بود و با هم مشغول صحبت بودند. بیک صحبت اونها رو قطع کرد و وارد اتاق شد و بعد از سلام زبون به شکایت باز کرد و گفت آلی جناب آلی جناب من این دوز رو گرفتم و نزد شما آوردم این دزد پر رو موقعی که وارد مهمون شدم دیدم داره غالی منو لوله میکنه و میخواد ببره منم سر به زنگاه رسیدم و اونو نزد شما آوردم تا با عدالت خودتون اونو به سزای عملش برسونید قاضی نگاهی به جوان انداخت و گفت ای جوان تو چرا میخواستی غالی این مرد رو بتوستی؟ جوون افسانه ما با شرمندگی گفت قربان من من وارد اتاق شدم که قالی رو بدستم قالی رو که لوله کردم و خواستم ببرم سابخونه سر رسید و من گرفتار شدم بیک بتوندی گفت قربان میبینی چه با کمال رویی اعتراف به دزدی میکنه در این موقع علی شیری نوایی نگاهی دقیق به جوون انداخته گفت پسر جان قیافه تو برام خیلی آشناست. تو تو پسر کفاش نیستی؟ جوان سکوت کرد و چیزی نگفت. رو روبه غازی کرد و گفت. جناب غازی من این پسر رو میشناسم اون اهل درس و تحصیل و علمه. من فکر نمی دلیل ورودش به خوله این مرد برای دزدی بوده باشه. نه نه. اون دوز نیست پدرش هم مرد زحمت که شد درستگاریه قاضی به نبایی گفت ولی دیدین که اون خودش اعتراف کرده که برای دزدی به اون خونه رفته بوده نوایی گفت درسته درسته که این جوون به دزدی اعتراف کرده اما اگه اجازه بدین من تو تنهایی باش صحبت کنم و به اصل موضوع پی ببرم و بعد به قاضی گفت جناب قاضی اجازه این کار رو به من میدین؟ و قاضی هم پذیرفت و همراه بی که زیر لب غرولند میکرد اتاق رو ترک کرد. من دقیقی گوزشت به شروع کرد به قر دادن که جناب قاضی من نمیدونم وقتی این جوان پررو خودش به زبون خودش میگه اومده بود کالی منو بدزده دیگه این بابا میخواد به چی پی ببره و چی رو میخواد کجش کنه ها قاضی بیک رو به صبر و تحمل دعوت کرد و گفت ثبر داشته باش اگر حقیقت چیز دیگه ای باشه بیک بیک گفت حقیقت همین بود که شنیدید و سلام خب حالا بشنوید از علی شیر نوایی و جوان افسانه ما وقتی اونا تنها شدن نوایی به جوان گفت پسر جان منم مثل پدرت هستم به من راستش رو بگو چرا رفته بودی تو اون خونه جوان سکوت کرد و چیزی نگفت علی شیر نوایی گفت من میدونم؟ من میدونم که تو اهل دزدی نیستی پدرت رو هم خوب میشنزم اگه راستش رو بگی ممکنه بتونم کمکت کنم و اگر دستور میده دستت رو قد کنم و آبروی خودت و پدرت توی شهر میره جوان سرش رو بلند کرد و توی چشای نوایی خیره شد خواست حقیقت هم رو بگه ولی نتونست نوایی یک بار دیگه حرفش رو تکرار کرد و جوان رو مطمئن کرد تا حقیقت ماجرا رو به اون بگه و بالاخره جوان قبول کرد و با شرم گفت بله شما درست فهمیدید من به قصد دزدی به خونه بیک نرفته بودم من من نوایی پرسید تو چی بسرم بگو خجالت نکش جوان ادامه داد از شما چه بنون بیک دختری داره که من مدتی به اون علاقمند شدم. البته این موضوع رو هیچ کس حتی خود دختر بیک هم نمیدونه. من چند روزی بود اونو ندیده بودم و از این بابت بی رو و ناراحت بودم و رنج می راستش خودم هم نمی شد که یه دفعه وارد خونه بیک شدم، وقتی متوجه ورودم شدم فورا خواستم برگردم ولی دیگه دیر شده بود و بیک سر رسید و منم برای اینکه که برای ورودم به اونجا داشته باشم غالی رو لوله کردم و گفتم که دزدم و اومدم غالی رو با خودم ببرم علی شیر نوایی خندهی کرد و گفت که این تو پس ماجرای عشق و عاشقی در کاره جا بود بعد به جوون گفت، نگران نباش، نگران نباش من کمکت میکنم. جوون با خوشحالی گفت، واقعا، واقعا شما میتونید برام کاری انجام بدین؟ نوایی گفت، الله که بتونم. جوون گفت، مشکل اینجاست که بیک راضی نمیشه دخترش رو به پسر یک کفاش بده. نوایی گفت، درسته، درسته که تو کفاشه. ولی همه اونو به درستکاری و خوش رویی اون مرد زحمت که با تلاش روزی حلال در میره. تازه خودت هم جوون تحصیل کرده و اهل علم و دانشی نگران نباش من خودم با بیک در این بار صحبت میکنم به بعد نوایی به سراغ غازی و بیک رفت تا حقیقتی رو که کش کرده بود برای اونها باز کنه وقتی نوایی به و بیک رسید با خوشحالی گفت قربان حدث من درست بود این جوان دوز نیست اون هیچ وقت دوزدی نکرده به بایک با عصبونیت گفت این چه حرفیه که میزنین من اگه به موقع نرسه بودم قالی منو دزدیده بود خودش هم اینو قبول داره نوایی خنده کوتاهی کرد و گفت <تصفح> این جوان اهل علم که از خانواده درستکاری یه دختر شما رو دوست داره و به همین دلیل وارد حیات خونه شما شده البته بی اختیار وارد اونجا شده و قصد بدی هم نداشته به که با شنیدن این حرفا از کوره در رفت و گفت چی؟ این جوونه یه دختر منو دوست داره؟ عجب روی داره والا نوایی گفت جناب بیک سخت نگیرید اون جوون خوب و درستیه من پدرش رو هم خوب می شستم. حالا از شما خواهش میکنم همین الان به خونه برین و خودتون رو برای آمدن ما آماده کنین. من از طرف خودم این پسر رو زمانت میکنم و به اتفاق پدر این جوان به خواستگاری دخترتون میاییم. قاضی که تا این سکوت کرده بود گفت فردا روز جمعه است انشالله که مبارک باشه. و به این ترتیب نوایی دختر بیک رو بعد پسر کفاش تر و اونها به مراد دلشون رسیدند این که امشب براتون نقل کردم افسانه نوایی و پسر کفاش بود بریرفت از کتاب قصه از آسیا با ترجمه از عبالفضل آزموده افثانه ها و قصه ها بر روی ما تأثیر ای دارند و این خوی و خسلت و جاذبه افسانه ها و قصه هاست که من و تو رو دربر میگیره هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالکو ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار الهام مشرف‌کرد تیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود